که نبی کردیم فرمودند که در آخر زمان فتنها می آین این سوال دبا فتنه آخر زمان هست در آخر زمان فتنها می آین وقتی فتنها آمدن وزنی فشمات چیز در این صورت ها به صورت مختلف نیم و گاگای این قاد فتنه بار خود مسلمانها زیاد میشه که یو هموم همومنن و یو سی کافرن سو مسلمان از خواب بیدار میشه گروه باشده کافر میشه غروبش به سالمانه تاثر کافر میشه این قادر شدید میشه خود اتفاقات و فتنه آخر الزمان و بعد نبی کریم علم که که وقتی که فتنها آمدن این زودین فتنه آخر الزمانه. خدا نکنه این اتفاقی افتی این فتنها هستا علم که القائم خیر بنستائی اول بعض راوت الماشی کسی داره آرام آرام راه میره، ازون داره نی دو به ترفت نهای، این بهتره. علاقه خیرون ماشی، کسی کی استاده، از کس دار راه میری به ترفت نهای، این بهتره. والقائد خیره بر او اون کسی کی استاده، برای کسی کی نشاسته، این شخص نشاسته بهتر از دونها. یعنی چه؟ یعنی اونها به طرف فتنه‌ها میروان، رو حمایت میکنن، فتنه‌ها رو تحلیل میکنن، برای فتنه‌ها نیرو جمعاوري میکنن، در فتنه‌ها کار میکنن، یعنی زودی پردازی میکنن، اینها همهشون مردودن. هر کسی که نشسته دور از اونها جدا، توجه نمیکنه، فکر نمیکنه، نمی کوبک زمین زمینه‌سازی نمیکنه، این انسان بهتره. یعنی دستور دا در این زمانی شما بر بگردی عقب. بشینید و دخالت نکنید. تو ای حدیث نبی کریمه داخل استی بخاری میان بهترین مال مسلمان در هنگام ظهور فتنه ها دو تا مشلندند دوستا بند ببین بود کوهی از شیرش بگیر بخور خور زندگی روجا سفری کنه و الله رو عبادت بکور از فتنه فاصله بگیر فروا از فتنه ها آمدند دوستاندار بی دا داخل کوهی در بیابان زیر درختی بشین همونجا از شیر رو اونها بخور و عبادت بکور اما در فتنه ها دخلت داخل سی بخار حدیث دیگری هم داری فتنه وقتی ظاهر میشه امام بخار رحمه الله برای اثبات یه شعبی آورده بیگه اول که میاد مانند یک جوان دختر زیبایی هست وید فتنه ظاهر میشه داخل دنیا جن میاد اختلاف میار مانند دختر زیبایی هست همه نگاه میکنن، با حبا جذب میشه فتنه اول یوری میاد. حالا وقتی این داری فتنها ها هو سعود چکار میکنه ایران چکار میکنه امروز شکار میشه حالا میزنه همه کنک‌ها و همه دارن دوبارهش میرن اخبار پیگیری میکنه فسره این میکنه میکنه دختر زیبا ظاهر میشه مردون جلوش میرن واج جلورافتان و شلوگردان کردن برای فتن درست کردن اختلاف باشه شده و ادام میفرن بخاری رحم الله شاعر شاد که فتنه مانند یک پیرزال بدر بدریت میکنه فرار میکنه و این سالها بینی سوزن اون کسان جنگ روز کردن فتنهاد درست کردن اون آلی خودش پوست میکنه هیچ اون توجه نمیکنه میره کنار اما آلی در فتنهاد گرفتار میشه اولی اتفاقی افتاد حالا کوها اما در جنگها و اینها شرکت نکنیده